آنجل از اونچه میدید میخواست عکس بگیرد از کشتی بخاری که در اینجا به آن پراخود میگفتند و زورق موتوری که بر کاسش و دروشکی که فایتون میرامدند از مردانی که سبدهای سبزی و میوه را به دو سر چوبی دراز برشانه حمل میکردند. از زنانی که خمیده در شالیزار به برنجکاری مشغول بودند از دهقانان گیلانی که پای بیافزار بر سنگ و گل میگذاشتند از قایقرانانی که تنپوششون جانجان بود و از پل چوبی بعد از مرداب در پیل بازار از اتاقی که قزاق‌های روسی در آن باج راهداری می‌خواستند چراهی در این سنگلاخ که راه نیست سالدات روس پل چوبی را نشان داد ما ساختیم مونیف دیوان با صراحت لحجی که در ینگ دنیا مخته بود گفت بی اذن اینجا ممکن ماست ما چه باج و خراجی داریم به شما بدیم کنید خودمون میسازیم. بقیهٔ مسافرینی که به آنها از پراخوت پیاده شده بودند در کپهای پشت سر منیف دیوان با بخچه و بسته ایستاده بودند و در گفتگو شرکت نداشتند انجل از منیف دیوان بعضی جملات و اصطلاحات زبان فارسی را آموخته بود که بیشتر به کار تعارفات و تکلفات مرسوم میخورد و به کار گرفتنشان موجب سرور هموطنان شوهرش را فراهم می‌آورد. اما کافی نبود که مکالمه منیف دیوان و سالدات را تعقیب کند. فقط از لحظه صدا که منیف دیوان به مسئله متعرض است و پرسید، مونیف دیوان با خشمی که متوجه راهدار روسی بود جواب داد، He wants us to pay tribute before going through. آنژل که تواوادی میان و قضاق روسی و سرباز ایرانی نمیدید، نمی دید و, و وقتی دید شوهرش همچنان با خشم به سالدات روز چشم دوخته است به فارسی اضافه کرد آسیا باش درشت پستان نرم پس مونیف دیوان خنده افتاد زن شد که درشت بستان نرم پسته آنچه به چشم آنژل زیبایی های بیگانه میآمد به چشم مونیف دیوان عقب ماندگی های وطن بود ولی در اینجا نه فرصت توضیح برای همسر را داشت که به دیدن ملک عجایب آمده بود نه امکان کلنجار رفتن با غذا را که با قطار فشنگ و تپانچه کمری در مقابلش علم شده بود باج را خلقی پرداخت و سپایه و دور بین زنش را به دوش گرفت و عقبی ایستاد تا آنژل از درگاه بگذرد و خود به دنبال او از اتاق نگهبانی دور شد آنژل به انگلیسی سؤال میکرد و در دفتری نسخه داشت. اسم این محل چیه بندر انزلی با مختصر توجه اینجا میتونه نصف سیاهان بشه بهترین ماهی زفید مغوب ترین خاویار دنیا از برخ ذری آنژل در هین نوشتن پیشنهاد داد بیاجا مهم مهمونخونه با غذاخوری دایر کنیم خوراک مخصوص کباب ماهی و خاویار اداره مغازه طتی فروش نیویورک ایسپریین به شرکا منم از کار روزنامه نگاری دست میکشم نا چرا دست بکشم از اینجا مقاله و عکس و مطلب می‌فرستم. مونیف دیوان خندید و گفت آزمند همیشه نیازمند. آنجر پستید. با پسته؟ کمی که؟ و با دقت اصطلاح جدید را در دفترش وارد کرد و منایش را به ترجمه خواست و با شعف کتابچه را به شوهر نشان داد و گفت تقریبا پره. از شازده و فخر خیلی چیز یاد گرفت ملاقات با فخر زمان و شاهزاده در تفلیس که از طریق مراسله از قبل تعیین شده بود دو روز به درازا کشید آنژل تمام آن دو روز را فارسی شنید گاه چند کلمهای به فرانسه با شاهزاده رد و بدل کرد و چند جملهای به انگلیسی با شوهرش اما منیف دیوان مشتاق بود به زبان مادری صحبت کند تا زنگار این چندین سال سخن نگفتن را از آن بزداید. و آنژل هم مایل بود بیاموزد امثال و حکم در ذهن منیف دیوان امیقتر از کلمات روز حک شده بود و بعضی از آنها را که به تناسب به خاطر می میآورد به زنش هم میاموخت. آنژل بسیاری از اوقات ضرب المثلها را هم به هم میآمیخت و معجون غریبی از آن میساخت آخرین دستپختش در تفلیس بود به فخر زمان گفته بود آمدی زیر اب روش و درست کنی کباب شد در آن دو روز این در هر فرصت آن را یادآور میشد یا نیمه دومی که به قرین ساخته بود ارزه میکد آمدی سواب کنی چشه شکر کرد در مدت توقف در قفغاز و آن دیدار کوتاه به دعوت فخر زمان خاندایی و خانم دایی پذیرفته بودند که مدت اقامت در تهران را در خانه او بگذرانند و از شاهزاده هم حامل رقعی برای علی اکبرخان بودند آنژل میل داشت قبل از رفتن به تهران از تبریز دیدن کند که محل کشته شدن هموطنش گوارد باکسگویل بود، در دوره استبداد سقیر به آغاز محاصره تبریز توسط قوای محمد علی شاه. شرح احوال این معلم جوان به قلم مور انگلیسی در جریده تایمز منعکس شده بود. معاذا آنژل اطمینان داشت که می تواند با چند عکس جدید از محل حادثه و چند مطلب نگفته از قول شاهدان ماجرا مقالش را برای جراید اینگه دنیا جذاب سازد. منیفتیگان به علت بارداری آنژل و مشکلات سفر و راههای نامساعد شوقی به طولانی کردن مسیر نداشت ولی در نهایت تسلیم شد هرچی باشد این مسافرت که هر دو به فکر تحقق بخشیدن آن بودند به علت حمل گرفتن آنژل تسریع شده بود بنابراین باید کلش به میل اون انجام میشد در تبریز برخلاف انتظار اطلاعاتی که درباره مثل باسکبول گرد آمد نه به سهولت بود نه مزید بر اخبار موجود در آن یک روز توقف آنژل موفق شد که در مییت منیف دیوان با سه تن گفتگو کند تاجری به اسم آقا آقاتقی که خاطراتی آشفته از آن روزها داشت قنصول امریک که تمایلی به دادن اطلاعات اضافی نداشت و بالاخره مهدینامی که از شاگردان مموریال سکول و از ظمره افراد فوج نجات بود آنژل برای آنکه دو نفر اول را به جواب وادارد ناگزیر به سؤال بود ولی نفر سوم را به حال خود گذاشت تا مشاهداتش را به زبان خود بیان کند بی آنکه رشته کلامش قطع گردد تغییر در تبریز جار زدند که هرکس میتواند حاضر باشد در میدان یا یک نفر بدل بفرستد برای مشق نظامی در آن ایام غیر از مشهدی نقی و بنده از اخوان گرام تبریز نبودند حقیق تفنگ برداشته، هر روز از محله راسته کوچه با تبلش ریپور و میدان مشق رفته و قدر دو ساعت یک دو میکردیم. سار، تحت نظر مستر باسکویل خیر دیگر مجاهدین تا ماه سفر این مشق نمودن بود. از تهران سردار ارشد یک توپ آورده بود در گوه ساری گذاشته از اونجا دو توپ به میدان مشق انداخته. بعد از اون دیگر رو مشق مقفد. دار. مثل اسکتبل تعلیمات نظامی نمیداد چرا دو نفر از اهل امریکا بود اینها مشق میدادند در عرگ یک نفر مخبر روتور بود یک نفر دیگر روتور مثل مور از رویتر بله چرا؟ سوال. اون یه نفر دیگه مثل باسکویل نبود چرا اینها بسیار خوب مشق میدادند در میدان چند دفعه عکس انداخت که جمعیت زیاد پشت بام و پایین و مشق کنندگان بود ستارخوان یک روز با سواره آمد به قدر صد نفر آنها هم مشق سواری مینمودند صدای زندهباد از ملت بلند پس باسکول اتفاقات که در ماه سفر افتاد زیاد است. دوازدهم ماه سفر بود خبر آوردن که سمت خان به حل حکم آباد آمد اونش آدم آنجا سنگر بود فرار کرده بودن با در همینجا خیر. آن روزها میرهاشم خباز مداخل زیاد در اون بروانه بود گندم از عرق می آورد من هزار نان خواسته می پخت عددی می من خمسه چون خون جگر فقرا در سر این گندوم میخ این بود که عاقبت نداشت میرهاشم مربوط بود با مستر باسگرویل خیلی با باغیر خان آیا ایام هارتون نام ارمنی هم با یک نفر فرنگی شریک شده بودند با خوردن مال مرد برات فرانق فرانسه میفروختند از مزن نکمتن ما هم جهالت کرد صحبت از مستر باسکرویل بود بلی آن روز مشاق امریکایی با مجاهدین که مشخ داده بود از صبح رفته بود شام شامقازان از طرف پل آجی تا سرحد محله اهراب آن روز دعوا شد رو. امریکایی در پیش بود چون در بعضی جا نابلد بود داخل باغ شده دیوار شکافته سیر دیوار جهت اوت با خاکسته ر و غیره میآورد آنجا که پا میگذارد میافتد آن طرف رو میزنم، فوت میشم، آن روز جهت او دل شکسته میشه تا اصل دعوا بود، که اوائل ماه ربی و ثانی حالا امریک. هوارد باکسگویل طبق اوراق موجود در محل کنسولگری از دارالفنون فنون پرینستون فارغ رو تحصیل شده بود با اخص درجه بی ای به عنوان اولین شغل تدریس در مدرسه امریکاییون تبریز مموریال سکول رو پذیرفته بود به هنگام مرگم 25 سال دارد چی باعث جذب او به طرف مشروط خواها شد احتمالا چون جوان بود سر پرشور داشت دلبسته آزادی بود از غذای روزگارم وقتی به ایرون رسید که ندای آزادی خواهی در اینجام بلند بود کل این عوامل. از کی به صفحه مشروط خام پیوست قنسولگری از این مسائل اطلاعی نداره ولی چنین شایعه که کشته شدن یکی از معلمین ایرانی مموریال سکول به دست قوای دولتی باسکتبل رو منقلع میکنه بین ترتیب ورده نهصد میشه به شاگرداشم تعلیمات نظامی میده متاسفانه متاسفانه یعنی این مرتبه آمریک مجاز نیست تا این حد در امور داخلی کشوری بیگانه فعال باشه خلاف معاهدات فیما بین ممالک متحده و ممالک محروس است به علاوه طبق قوانین ما قابل تعقیب جزایی پاسپورت با فوتوفن عسکری آشنایی داشت طبق اسناد در واقع خودش خدمت نظام دیده بود پس توان آشنا بود پس باسکبویل بدون اطلاع مقامات به آزادی هم قدم شد. چگونه مقامات از این ماجره متلع شدن؟ این نوع اخبار در ممالک محروسه مخفی نمیمونه. خبر که به قنصول سلف من میرسه شخصا به ارگ میره که محل تعلیمات نظامی باسکبویل بوده. به او اخطار میده که دست از فعالیت برداره. شایه ای که واد باسکبویل تذکره امریکاییش رو به قنصول مسترد میکنه و یک سره در جبه ایرانیان آزادی در حصول در این باره سندی موجود نیست. خاطر مسلم اینه که هووارد باسکوول از ط آمریک بود در ممانیک متحده چشم جهان گوش بود طببعه و مند کرد چشم از جهان ب بود در راه اهداف ایرانی آم مرد. نظر شما باره باسکوول جوان رشیلی بود با تاثیرات عالیسط حیف که جوان مرگ شد. مهدی شبانه که بایستی در بلدی جمعایی از کسانی که عاهد تدایگری با مثل باسکوول بسته بودند، جز یازده تن نیامداد. احتمالا این بود که تا خسم از پا نیفتد ما از پا ننشینیم یا خودشان خوف داشتند یا علیایان آنها مانع لبسران شدند ولی از دیگران دسته انبوهی تجمع کرد نزدیک به نیمه شب از اونجا روانه قراجاخ شدیم. این محل سرتا سر پر سر از مجاهد و توپچو و جنگجو بود. ما را به مسجدی بردند که چند ساعتی در آنجا استراحت کنیم. باسکویل هم یک دم قرار نداشت. درون مسجد نیز ما را به مشق و ورزش فاهمدن. می گفتن سردار خواهد اومد، یک ساعت پیش از طلوع آفتاب تاخت تاز آغاز شد، ولی سردار دیر رسید، سپیده دمیده بود، روشنی نیمه تابیده بود که ما راه افتادیم، ولی هنوز آفتاب کامل بالا نیامده بود که به دشمن نزدیک شد. کوچه باغی را گرفته پیش می رفتیم، این سو و آن سوی ما باغ بود، در پایان کوچه باغ مزرعه وسیع پدید شد، ورای که زار توپ به خسم در خفای زنگر بود. در اطراف آن قزاه ها پاس میدادند ما از دورشان رو میدیدیم همین که کوچه باغ را به پایان برده به دهانه قصر نزدیک شدیم باسکرویل فرمان دو داده خیشتن در جلو در جهت سنگر قزاقان چند تنی از ما پی او را گرفتند دیگران چون توپ و گلوله را در برابر میزند پیروزین نکرده بیده. رنگ پشت درخت ها و دیوارهای باغات طرفین کوچه باغ سنگر گرفتند اما باسکوبل همین که تیری انداخت و چند قدمی دوید قضاقی هدف گلولش گردانی در آن هنگام که می افتاد فرمان درازکش داد آن چند که به فاصله چند قدم در نرقفایو بودند در پس پشتی بر زمین خوابیدند آواز باسکوبل بلند شد من تیر خوردم این گفت و بعد خاموش در آن هنگام که ما در میان مزرعه افتاده بودیم قضاقان کشیدن جسد باسکرویل را ببرند. حسین خان شد با دو تیر دو تن راه از پا در آورد. بود بی جان باسکرویل را از رزمگاه به شهر بودیم. مرگ باسکرویل بر تبریزیان گران آمد. همه را افزار دگر دانید. از خود کشته زیاد داده بودیم اما باسکرویل بر ما میهمان بود و در راه نهزت ماجان داده بود و درد مرگش دردی دیگر بود. جنازش را با شکوه و جلال به خاک پردیم، سراسر راه از شهر تا گورستان امریکایان مجاهدین در دو طرف صف کشیده با توفنگ های وارونه ازدادن، شاگردان باسکربل و اعضای فوج نجات و ارمنیان گرجیان و امریکایان و همه آزادی خوان بزرگ و کوچک با دستهای گل اطراف جنازه را گرفته روان شدیم، همه را اندوه گرفته بود، در مقبره سخنان پرشور گفته شد بارون سیدراک از خواهان ارمنی گفت من اکنون بیگمان شدم که مشروطه ای ایران پیش خواهد رفت زیرا خون پاک این جوان بیگناه در راه آن ریخته گردید تفنگی را که مستر باسکول به دست میگرفت و به هنگام کشته شدن نیز در دست داشت تجسس کرده یافتی نامش و کلمه آزادی را بر آن حک نموده به یادگار برای مادرش ارسال داشت آنجل فقط گفت اپیک! an epic منیف دیوار نفسود avenues will be named after him You'll see No one here will ever forget his bravery Ever تهیه طریق تا تهران تو با باهای جنهای انجل بود مناظر، البسه صورتها، امارات وسائل نقلیه همه برایش ظهور بود و از میان قبار تاریخ و ابهام قصص سر بیرون کرده بود با آنچه را از این جمله میدید با یک کلمه وصف میکرد اکساتیک روغی شاهزاده خطاب بل یک بیشتر انعکاس احوالات درونیش بود رفته رفته از اصلاح امور یا از حاصل کردم آشو و پریشانی تهران از یک طرف سرحداد مخشوش و حاکزا سایر بلاد در راه ویرانی به درجه ای که از تقریر آجزم دست اجانب همهجا قاهر ملت مخور در غزین اساکر روسی قشون فاته هند و این ملک مفتوب روسیه دولت قورخانه ندارد خزانه توهی مردم آمی آجرم نه زوری هست و نه پولی نه مشاوری بعد شاهزاده مفصلا از اغراض شخصی هموطنان گله کرده بود و از کمبود اشخاص با قابلیت و از فقدان اتحاد و اتفاق آتش از آتش گل میکند کند به یاری و معاونت قوت میآید. چند کرور بودن و با هم نبودن به کار نمی آید، سلطنت مقتدر و پاچاه مالک و رقاب را رد نکرده این که حالا مفت ملایان باشد که حریف در میدانشان کمتر میماند دست این جماعت را از امور کوتاه کنید، یاران در استانبول می گفتند آن چند نفری از این طایفه هم که اکنون به حب به جاه مشروط خواه شده اند برخر خودشان بینشانید، وگرنه نه قافل مشروطه تا به هرش لنگ خواهد بود. بعد افسوده بود حالا خواهی گفت بر تو نیست با من نصیحت کنی ولی به جان عزیزان دوست مشفق قسم که قصد معزه نیست وقتی پایم به شهرهای آباد بلاد غرب میرسد که راه راهان مثل اروغ و این قطعاتش را به هم اتصال میداد و به یاد می آورم که جماعت روحانی حتی ماشین دودی را برای ملت ما تحریم می پریشان پریشانحال می شود تا کی خرسباری؟ وقتی چشمم به زنان این بلاد میافتد که تاج سر مردانند و به خاطر که زنان ما پرد پوش و ملعبه دست آخون تا هستند، اگر حرکتی بکنند به تحریک آنهاست که امروز میگویند بروید و در ملع عام به اتابک حد کنید و فردا میگویند گویند بگیرید که صوت زن مزمار شیطان است، یعص به من آرز میشود. از امکانات و محاسن بالقوی مملکت شاهزاده به تفصیل سخن گفته بود، اظهار تعصف کرده بود که همه اینها آتل و باطل مانده است و ملت جاهل ما از بردن فوائد و هزایز محروم است در خاتمه اضافه کرده بود بنده مبتلا به قرحهای دماغ شده است و چند روزی است بستری است اما اتبا گفتند که بادمجان بمافت ندارد علی ای حال من و فخری چند سواهی در آنجا رهل اقامت میفتنیم تا بعد دست تقدیر چه در آستین داشته باشند خانم والدهٔ فخری از کسالت حقیر و مقاصد ما اطلاعی ندارند لزومی نیست که خاطرشان پریشان کنیم طبق رسم به ایشان بفرمایید عافیت خاصل و عمر سفر کوتاه است برای حلیله جلیله سرکار خانم منبر دول دامت ها عرض بندگی دارم فخری هم به سلام مصده است خان مراسله را تا تای تا تمت خان و فقط کوتاهی سفر و حصول آفیت دختر و داماد را به ملیح ملی زمان ابلاغ کرد ملیح زمان گوه واا بسم الله همین خبرهای دیگه چی؟ آدم برای که اکبر به حرف میاره با چین دونشون ب تکونه بالا آنژل از منیفتیوان ترجمه خواست و چون شوهرش سرگرم صحبت با سلطانه و نایب عبدالله بود رو به امیرخان کرد ترجمه تکاندن چیندان از فرانسوی امیرخان بر نمی آمد به ترجمه مفهوم آن قناعت کرد دو فقه پغل گلکن او شمسلطنی که فرانسه صحبت کردن برادر را برای بار اول می شنید. حرفش را نیمه گذاشت به طرف امیرخان برگشت برگشت او آب سر بالا می میخونه خنده حاضران بلند شد و منبر دوره سر امیرخان را بوسید و گفت ماشالله با هوش و گوشش هزار ماشالله شاپه سر والا عباس خان در حالی که یکی از سیگارهای برگ تعارفی خاندایی را میان لب گرفته بود گفت من فیانش یادش دادم و چند قطر از ویسکی سوقاتی نوشید آنژل از همه ترجمه سربالا رفتن آب و ماهور خواندن قورباغه را خواست ولی کسی داوطلب نبود تا بالاخره باز امیرخان را وادار کرد و او با سرخ شدن و خاراندن گردن و احتیاط هرچه تمامتر گفت ایتالیس سیانس دوان لژان سوان با اینکه آنژل کلمات غورباغه و آب را در مثل تشخیص داده بود و ارتباط آنها را با ترجمه پیدا نمیکرد به این قناعت کرد که بپرسد ماهور چیست امیرخان در کتو شلواری که خاندایی برایش از ینگ دنیا آورده بود و فوکلی که به گردن بسته بود هم مشعوف بود هم معذب باز گردن را خاراند و در یقه جا جابجا کرد و از عباس خان کمک خواست دستگاش میشه به فرانسه دستگاه موسیقی اباسخان گفت خودت بسید ترجمه میکنی میکب که میشه از من میپیسی امیرخان خنده از روی عرض کرد شونهها را بالا برد و از ناتوانیش از آنجل عذر خواست. ما نیفتیوان دستی به سر امیر کشید و به زنش گفت نایب عبدالله بیان که در صحبتها وارد چوت از حضور در میان خیشان جدید عرش را سیر می و در پوست نمی گنجید. با دو سندی که در جیب داشت بنچاق خانه صاحب جمع و عقنام شمسلطنه خود را دولتمند تر مرد عالم می شموند. بسکی مال تم سر خوشترش کرده. به گفت: اگه فقط دو شب زودتر اومده بودین، اخ کنون ما بی نفس می البته به مرحمت خال منور. منور دوله حرف را کرد و گفت و روی خال منور سیاه کاری نتونست برات بکنه. اخ کنان شمسلطنه و عبدالله خان نایب در خانه منور دولو علی اکبر خان بی پیرایه و متشخصانه برگزار شده بود در حضور افراد خانواده و چند دوست نزدیک. منیف دیوان با سر تکان داد و گفت ساعت حیف اگه سفر به تبریز نبود شاید به موقع می رسیدیم ولی هم از عقل مطلع نبودیم و هم آنجل به اون سفر تمایل داشت با اینکه از نظر من به خاطر مشکلات راه و وضع مزاجی و او کوتاه کردن سفر مرجه بود خصوصا که جشن شما هم بود و دستهار برشانه عبدالله خان و شمسی گذاشت عباس خان گفت عوضش بیای ایوسی من است. اون ایفتیوان با سادگی یه اینکه دوینایی ای گفت ببینی منظام رو دعوت میکنه یا هنوز طلبکار ارسه و خودش با صدای بلند خندید. کمتر کسی در خنده با او همراهی کرد ولی صدای اعتراض های نیمه دل از همه برخواست و نگاه های معنیدار میان همه رد و بدل شد. منظام سلطنه نرسیده بود و خانداداش را هنوز ندیده بود. و هیچ کس به تحقیق بل بالاخره برخورد خواهر با برادر و زن برادر چگونه خواهد بود خصوصا حالا که آنجل هم حامله بود و منیف دیوان در هر فرصتی از این آوستنی حرف میزد و آنجل مدام بر برجستگی دل دست کشید. ملی زمان از همه نگرانتر بود و این نگرانی از سر شب دم به دم فزونی گرفته بود شب خوش بود، خیشان جمع بودم مستخدمین فخری و شاهزاده را رسم پذیرایی از فرنگی ایرانی را میدانستند کاش منزده از آمدن منظرف شود مستخدم سینی را با لیوانهای رنگارنگ شربت روی میز نزدیک درگذاشت و عقب رفت تا منزده سلطنه داخل شود منزده سلطنه وارد شد، نفس نفسی که میزد زد هم از خستگی حمل بدن بود، هم از سر قهر با جمع حاضریم دستها را کنار میز گرفت بالاتنه را نزدیک سینی شربت بر سطح میز تکی داد یک لحظه هم همه صحبت در اتاق خوابید و سرها به طرف منزح السلطنه معطوف شد آنژل که از عظمت هیکل منزح السلطنه متحیر مانده بود بی اختیار گفت د و بلافاصله برای جبران بیزرافتی که اگر کلمات هم نامفهوم میماند لحن محتوایش را لو میداد از جا برخواست و با لحنی گفت که به کانون منزه سلطنه کلی زحمت دادین کلی کجالت کی کشیدین و در میان خنده های حاضرین شکم برامدهش را جلو داد و به طرف منزه سلطنه رفت و لیوان شربتی از روی میز برداشت و اضافه کرد حالا ما شربت بکریم یا ممه